شریان کی صد جلد دوم فصل دوم اک حقیقت جاودانه. پیام ایکنکاب توسط ماهانتا استاد حق در قید حیات نازل می‌گردد. آن صدایی است که در وادی وحش غریب میکشد شریان حقیقت از صبح هر آن کس که به گوش جان، اولم معنای اشراف نماید درمیابد که اک حقیقت جاودانه است. شرط لازم و کافی برای نظاره حقیقت آن گونه که درک شود، ترس روح است. این فشارت جاودانی است که حقیقت خالص در اوج اقتدار و کمال در آن موج میزند و حصور بدان منوس به توقف روند فعالیت فکری فرد می باشد. شخص از جدال اقلانی با آن دست میشوید در پیشگاه آن خال طلاح می گردد. ولی این انفعال جبرا بالاترین میزان جذب را برای او حاصل می کنند و این کاملترین صورت عمل می باشد. انسان در هر مرتبتی که باشد آنگاه که تحت اراده عک قرار می‌گیرد اک قصد تملک او را ندارد و در حقیقت او را به خودش باز می‌گرداند او دیگر شخص سابق نمی‌باشد او متحول گشته و به این تشخیص نائل آمده است که خودش قانون حقیقت بوده ابزار بالقوه خداوند میباشد او با گودار ها و تجربه های جهان مادی استحال یافته است این از های کل میباشد فرد با هوشیتی مستقل قدم در وضعیت آگاهی انسانی میگذارد جایی که نظم زودگذر و فانی حاکم است او در این وضعیت توجه خود را بر معتقداتی که برایش حکم کمال حقیقت را دارد متمرکز می‌سازد. او ناگزیر است که بهای تجربه این سطح از آگاهی را بپردازد تجاربی همچون عیش و لذت و یا حتی دانش دریقا دریغا که در غالب اوقات متوجه نمی شود که حقیقت با فداکاری و استقامت و در نقاطی بدورد قیل و غال این جهانی کشف میگردد او بایستی توجه خیش را صرفا در خدمت روح قرار دهد چرا که اسرار اک پوشیده و مرموز است و در سکوت به فرد ارزانی میگردد. منطق و استدلال انسانی در برابر نور و صوت رنگ می‌بازد. دانش خدایی پیوسته دستن در کار خلقت است اما درک آن آسان نمی باشد فقط آنگاه که وحدت ازلی و ابدی اشیاء درک شود روح آزاد میگردد عالم هستی انتهایی ندارد و انسان نیز به عنوان سلولی از این بینهایت خود لایتناهی است از این منظر انسان همانند سود است انسان این قابلیت را دارد که مثل آن باشد اگر او قادر به دیدن است در حیاس باشد دیگر حتی به ذراعف و دقایق دانش و این گونه دانسته ها بسنده نمی کند بلکه اسلوبی واقعی را شناسایی می کند ای که در آن جمله‌ی پدیده های موجود در قلم معنوی واقعیت دارند حالتی که در عین حال هر شیء به تنهایی در آن واقعیت دارد این کیفیت همان ابدیت می باشد حقیقت اک برتر از گمان و وهم است کشاکش ما معنویت و نیروهای روانی مختص جهانهای پایین است و بس. بر اساس اصول حاکم بر جهانهای پایین و به عبارتی قوانین کن تمامی مذاهب یکی هستند این پروردگار جهانهای تحتانی تلاشش این است که به همگان الگاه کند تمامی مذاهب و طرق هدایت کننده بشریت از مبانی یکسانی برخوردار بوده و همه یک چیز را میگویند اما این حقیقت ندارد چرا که اک مذهب نیست آن را نمی توان با جریان مذهبی فلسفه ها و جهان‌بینی‌های های بشری همساندان است اک جریان قابل سماع حیات جوهره سوگماد یا روح القدس است آن طریق خداشناسی می باشد و با سفر روح به ستوهی فراسوی آگاهی مذهبی ادراک میگردد. تجربه‌ای که شخص به اراده خیشتن و از طریق تمرینات معنوی کنکار بدان نائل می گردن. این کیفیت مستظم حرکت آگاهی درونی یا روح در ابعاد لامکان و لازمان میباشد می باشد. در این وضعیت که همه علم مطلق حضور مطلق و قدرت مطلق و در یک کلام خدا آگاهی است تلعلق می تمامی مذاهب، فلسفه‌ها و مکاتب اسرار مشتقات اکنکار هستند. اکنکار ما سوای این حوزه های آگاهی است. آن دانش باستانی سفر روح است. وسط آگاهی درون است از طبقات پایین به وضعیات شگفتانگیز فوقانی آنجا که شخص احساس می‌کند نوعی هوشیاری ارفانی از بودن را دارد چون این تجربه ای به واسطه یک سری از تمرینات معنوی که تنها پیروان این طریق از آنها مطلع هستند میسر میباشد وضعیت کمال حالتی از رهایی هویت اصیل فردی میباشد این کیفیت از طریق انهدام دائم تمامی تجلیات خیش حقیر به وسیله روح در هین عبور از یکایی که طبقات هستی تا رسیدن به قلم رو بهشتی به دست می آید کشف دیگاهی مستقل و آزادی از قیود جهانهای پایین و نیروی کل مستلزم گذر از سطح آگاهی انسانی به اصالت روح می باشد آنگاه که فرد آخرین مرزهای زمان و مکان را در هم می و به دروازه جهانهای بی خالیا می تنینی درونی را شنود می کند که با ترس و دلخوره همراه است آن صدایی همچون گریه ها و شیون وحشیانه کودکان است انسان از آزادی می حراسد به طوری که اگر به اغیانوس بی هیچ برسد و خودش را آزاد و رها احساس کند به جای پذیرش این آزادی آن را بار مسئولیت سنگینی به حساب آورده و ترجیح می دهد که آن را به پای وجود دیگری نصار کند پاسخ برای کسی که است را درک کرده باشد بسیار ساده است او دانسته است که آزادی و حقیقت جاو او نیک میداند که آزادی از دیدگاه حکمت الهی رهایی از همه چیز است و فقط مسئولیت پذیری را برای او به همراه دارد او دیگر فردی کیهانی است به دانستگی رسیده و بر سرنوشت خیش حاکم است هر کسی که شعف جهانهای بهشتی را تجربه کند در وضعیت آگاهی انسانی تنهاست زیرا چیزی ندارد که بتواند آن را با دیگران سهیم شود ولیکن در بسن جهانهای بهشتی هیچگاه تنها نیست و دیدگاه والای بهشتی او را کفایت می کند تجربه هر شخصی از آزادی همان آزادی از همجواری ها و جامعه از مقامات اجتماعی و مناسب قومی و به طور کلی از جهان مادی است انصار آزادی نهایتاً جز،, جز زندگی فرد را لمس می کند. زیرا او با جوهره کل شیء کائنات خداوند وحدت حاصل نموده است از این نقطه بعد او می تواند انتظار آسایش و نه انتظار مشقت داشته باشد و اصلا نباید در قید این باشد که دیگران را تغییر دهد شکاف بین ابدیت و زمان اجتناب ناپذیر است مادامی که روح در ابدیت است در زمان حضور ندارد پس هیچ چیز نیست لیک در کالبد زنده فیزیکی روح در نقطه ای واقع شده که الزامن زمان با ابدیت تلاقی می کند در این وضعیت است که آن با خیش انسانی در کشمکش است همانجا که خیش غیر شخصی و ابدیت همراه با خیش حقیر و کالبدی با هم حضور دارند این آگاهی انسانی را عرصه جدال و ستیز می‌نماید اما جدال در را رابطه با چیزهای همجنس و هم قاعده موثر است حالان که زمان و ابدیت هیچ سنخیتی با یکدیگر ندارند اما خواهی نخواهی این دو در خیش انسانی با یکدیگر التقاد حاصل می‌کنند و فصل مشترک این طلاقی از خودگذشتگی میباشد عشق دائم نسبت به تمامی تجلیات زندگی توهم عشق است انسان نمیتواند دشمنانش را دوست بدارد و در عین حال در صدد نابودی آنها براید ولی عشق و از خودگذشتگی حتی زمانی که انسان دست به کار کشتن دیگران است میسر است و اگر هم مویستر نگردد همین که آدمی معنای عشق حقیقی را میآموزد. دیگر میلی به نابودی هیچ چیز در این جهان نخواهد داشت ابدیت که است که اکیست پس از مرگ فیزیکی وارد آن می شود و ایکنکان معمولا در گیر نبد با چیزی نمی شود اما چنان چه ضرورت اقتضا نماید به جهت حفاظت از خود چه بسا جنگ را برگذیند ضمنان فراموش نکنیم که در جهانهای پایین آن در پیکاری جائم با قدرت کل قرار دارد بشر نبایستی فکر کند که اگر در مواجهه با مشکلی جدی از ماهانتا درخواست کمک نماید آن از طریقی که خوش آینده اوست مشکل را برطرف می‌سازد. سوگماد متفاوت عمل می‌کند. شاید مشکل به قوت خود باقی بماند اما در نتیجه این درخواست قابلیت سازگاری و همچنین بینش فرد نسبت به آن معضل دگرگون می‌شود. حتی اگر جدالی دشوار و غیر قابل ظفر و پیروزی در پیش باشد، انسان در راه تقلیل و یا گوشهایش آن از امدادها و های معنوی لازم بهرهمند خواهد شد. مهم نیست که مشکل چه باشد. آنچه اهمیت دارد آن است که همگان نیازمند طلب کمک از ماهانتا استاد حق در قید حیات هستند. او تنها مقامی است که میتواند شفاعت ایشان را بر عهده گیرد شورش انسان بر علیه نیروی کل پدیده ای است. او گرفتار مسائل است که او را به بردگی گرفتند موضوعاتی همچون حکومت مالیات شغل اخلاقیات مذهب تحصیلات مسائل ارتباط جمعی جبر قانون و سلامتی جسمانی او برای خلاصی از این بندها با روی کل مبارزه می کند اما توفیقی به دست نمی آورد مگر آنان که به درک حضور مهانتا استاد حق در غید حیات نائل شوند و او ایشان را بر فراز تمامی این محدودیت ها پرواز دهد تنها بدین طریق بشر میتواند در این جهان با ماهیت منفیش یم شده و نیازها و مقتضیات کالبد انسانی و خوراک حواس و ارکان آن را دریافت دارد. بایستی به خاطر داشته باشیم که تمامی انتقادات، گلایه و مجادله های اک که به سوی ماهانتا نشانه میرود تماماً از جانب کل می باشد. او با استفاده از اذهان و آگاهی افرادی که تحت سلطه قدرتش هستند این شورش را بر علیه ماهانتا تدارک میبیند و تا حد امکان قصد تخریب اک و ماهانتا را دارد اینها کارکرد نیروی منفی حیات است که از مذاهب، سیاستمداران و جاهلان استفاده می تا موجبات زوال و سقوط اک را فراهم آورد فقط بدین علت که آن حقیقت است اشخاصی هم هستند که خود را اساتید اک خطاب کرده و ماهیت خود را زیر لفاف اک مخفی می نمایند آنها آورانی دروغین هستند که قصد دارند اکیست را در سیتره و اصارت خیش داشته باشند اما اگر کسی غالبا راهرو به طریق اک باشد شد، ندرتا فریب این عوامل کل را می‌خورد. برای دوی شکن نمودن این بهانه و دستاویز قدیمی که مشکلات زندگی همباره ذهن چلا را اشغال می می‌کند، ماهانتا بدون آنکه چلا متوجه شود، مکررا وادارش می‌سازد تا تلاش کند. صورت مسئله غلط را با استفاده از فرضیات غلط آن حل نماید این روش غالبا در مورد چلایی که ناگهان خود را در احاطه انبوهی از مشکلات شخصی یافته است جواب می‌دهد و او آزادی را می‌فهمد. مذاهب وضعیت آزادی را در قالب ورود به آگاهی کیهانی یا تجربه ارفانی تعریف می کنند. اما حقیقت چیز دیگری است. اکیست در یک آن آزار گشته و قدم به وضعیتی فراتر از آنچه که هست میگذارد آگاهی نفسانی شعوری محدود و توحیب میباشد و بنیان مستحکمی ندارد خواه بنیانش فیزیکی اجتماعی بیولوژیک و یا فرهنگی باشد بی هدف حدث کار آزادی از چنین این است. هیچ چیز دیگری به جز رهایی از قید آگاهی نفتانی اهمیت ندارد اکثریت مردم این را درک نمی کنند و در مسیر تمتعات مادی زندگی نظیر ثروت سلامتی و کامیابی های فیزیکی سرگردان می شوند جهان سحنه نمایش کمدی و درام است و انسان بازیگر آن می باشد چلای اک این را می داند و این فرصت را دارد که وارد این بازی نشود به او آموختند که به روند دائم ذهنی و اعمال فیزیکی و کالبد خیش بنگرد. اما او بایستی ضبیب ادراک خیش را افزایش دهد و ملتفت این نکته مهم باشد که آنچه از اوست خود او نیست او به لحاظ فیزیکی و ذهنی معجونی از دیگران است این مخلوط شامل عناصر مادی است شامل زمینی است که در آن تولد یافته و کالبدش را شکل داده است در طبقه ذهنی در برگیرنده وجودهایی است که موثر با او هستند مشتمل بر مردمی است که با آنها اختلاط نموده و همنشین می شود همینطور میتواند حاوی چیزهایی باشد که میخواند و اعمالی که ناظرشان است بدین منوال است که او تبدیل به جزئی از کل می شود کلی که او را در استیلای خود دارد آن کس که به سوالات جویندگان در باب اک پاسخ میدهد فکر را نمیشناسد شنیدن درباره اک معرفتی را نسبت به آن به همراه نمیآورد چیزی تحت عنوان پرسش در باب اک وجود ندارد طرح سوالی غیر قابل پاسخ فعلی ابد و پاسخ به سوال غیر قابل جواب نیز کاری بدور از عقل و منطق است و آنکه به استقبال بیهودگی و بیخردی رود ادراک فیزیکی، ذهنی و معنوی خیش را نسبت به کل کائنات و مبدأ عالم وجود از دست میدهد این نه خاطر است که اک اثر را باشد بلکه از این حیث است که مشکلات و نیازهای اجتماعی انسان همگی تصنعی هستند اکیس هرگز به نتیجه عمل نمی اما بدون تدبیر نیز عمل نمی کند او تمایلی به طرح و نقش کشیدن ندارد زیرا درون کیهان هستی چیزی وجود ندارد که خواستار تصاحبش باشد و بنابراین در صورت شکست دلیلی برای تأصف ندارد و در صورت توفیق نیز دلیلی برای وجد و شادمانی او نمی داند که عشق به زندگی و نفرت از مرگ چیست نه از هستی خود اظهار سرور می کند و نه می میکوشد که مرگ خیش را به تعویق اندازد و هر آنچه به زندگیش راه یابد نمیتواند قلب او را از اف جدا کرده و یا ترغیب به افزودن چیزی به الوهیت درونش نماید در طول زندگی ناگزیر است با دام موقعیت های اجتماعی مواجه شود به عبارتی با دروغی که نیروی کل او را با آن رو در رو میسازد این توهم یا مایه است موقعیت اجتماعی این است که او با بایستی از نقطه نظر انسانی همرنگ دیگران باشد او تولد میابد میخوابد کار میکند جذب بود دست کرده و تولید مصمی نماید این اساس زندگی است که او در آن به سر میبرد در بردگی به نیازها و ضروریات انسانی کال بدش. اما در قالب آتماساروپ ساروب برون از هیته این ناملایمات اوج میگیرد و در محضر سوگماد ماد مبدل به وجودی برتر میگردد دیگر درگیر مقتضیات جامعه نیست شرایط اجتماعی او را به سوی نیازهای پوچ زندگانی سوق میدهد و طوری جذب آنها میشود که به هنگام مرگ قادر به عظیمت به قلم را رو به روح نخواهد بود اولین و آخرین محصولی که در زندگی میتواند بدان دست یا بد آزادی است خلوت آزادی در صورت عدم جانبداری از مقولات روزمره جامعه بشری و ترک جستجوی امنیت در همهمه و کسرت این جهان و قیبت این اعتقاد به دست که قواعد بازی جبر روزگار یا طبیعت هستند این ارتقاء نفس تحتانی و برود به حاشیه امنیت خیش برتر می باشد خیش برتر همواره تنهاست زیرا آنانی که بدان داخل نشدهاند از روی جهل و نادانی بدان حمله بر می شوند بدین ترتیب آزادی از نقطه ای آغاز می گردد که دیگر در آن نگرانی و احساس گناه نمی روید جایی که چلاح حس می که دیگر قادر به تحمل موقعیت خود به عنوان خیش نفسانی در جامعه بیگانه و در برابر جهانی که در آن مرگ، اندوه و موج احساسات منفی او را لگدمال مینمایند اما او آگاه نیست که اندوه و پریشانیش ناشی از تناقض قوائد جامعه است او مردم خودش و خدا را به خاطر پریشانیش متهم می کند اما هیچ کدام جوابگوی او نمی باشند او در مسائل امیغ زندگی دچار بهد و شگفتی می شود و میل دارد که از چرخه تولد و مرگ بگوری زد. ناخداگاه دست به کار یافتن مهانتا استاد حق در غید حیات می شود در این راه گروههای دروغین را می آبد که تعالیم خیش را در اقصانقات جهان می پراکنند. او با پیامبران دروغین و معلمین کاذب روبرو رو می شود لیکن هیچ کدام چیزی را که ارزش جستجوی او را داشته باشد به او نمیدهند. هیچ چیز او را در زندگی راضی نمی کند تا اینکه در کمال خضوع و خشوع به توی مهانتا استاد حق در قید حیات می آید. استاد حق او را به طریقت اکنکار راهنمایی نمایی می کند آن مسیری با خیشن زباطی عکید است آموزش از طریق زندگی روزمره انجام می گیرد و چلا بایستی پیروی را بیاموزد تا خود را در معرفت حقیقی مستقر سازد چنانچه شک نماید جایی برای او نیست اما با اعتقاد راسخ به اک همه چیز به او اعطا خواهد شد ماهانتا استاد حق در قید حیات به حدی درباره همه جزئیات و زیر و بم زندگی رک و بیتعارف است که در باور کسی نمیآید. از مستر مسئولیتش چنین می‌نماید که جهان و تمامی مشکلاتش را طوری تحت کنترل دارد که گویی همه چیز در نظرش رویایی بچگانه بیش نیست. معمولا چلا فکر می‌کند که اگر فقط بتواند روش صحیح استحاله آگاهیش را بیابد او نیز قادر است به همین درجه از رشد برسد اما چنین نمی شود زیرا آموزش های اک بدون استمرار و استقامت شایسته و بایسته در بر نخواهد داشت در خلال اولین سال ورودش موانع متعددی بر سر راه جوینده قرار می گیرد. در قالب موارد موانع و سختی های بیشتر او را مشتاقتر می نماید اما اده نیز احساس می کنند که چیزی برای اکتساب وجود ندارد و با نوعی حس بی از اک خارج می شوند آنان که می مانند در می آبند که موانع و مشکلات چیزی به جز گرفت های درونی نیستند و ماهانتا استاد حق در قید حیات حافظ اسرار عمیق معنوی بوده و پس از طرف راضی چلا در آزمون زندگی این اسرار را بر او فاش ساخته و این فرصت را به او میدهد تا از برگزیدگان عک شود تمامی کارماها و مشکلاتش به جای آن که بر زمه استاد حقه در غیر حیات قرار گیرد و دوش چلا نهاده می شود تا شخصاً آنها را رفع رجوع کند همین که چلان ماهانتا استاد حق در قید حیات را به عنوان راهنمای معنوی خیش میپذیرد کشمکشی شدید وی آرز میگردد جدالی که در تیه آن تمامی انرژی که او صرف پرورش و رشد نفس تحتانی خیش کرده بود از بین میرود او به زودی میاموزد که در جدال بین نفس حقیر و خیش حقیقی یا روح هیچ کاری از او ساخته نیست و در همین حالت پی میبرد که خیش نفسانی قابل انهدام نیست او در تمامی جنبه ها با شکست مواجه میشود اما در موقع شکست او که مسئول تمامی اعمالش میباشد قادر به انجام کاری نیست و انگیزشی هم ندارد و هیچ آینده حال و گذشته را که در زندگیش ارزش چیزی را داشته باشد نمییابد. وقتی به این مقطع می رسد، ناگهان متوجه می شود که چیزی برای دفاع کردن ندارد، چیزی هم برای از دست دادن ندارد، اما او فقط بایستی قائم برخیش بوده و مستقل از لذ... سایر پدیده ها زندگی کند. به هنگام ورود به این وضعیت، هنوز نمی داند که چون این گیجگاهای به پاک شدن دارند، به همین علت استاد حق در قید حیات به او گوش زد می کند که چیز زیادی کسب نکرده است و تازه به دروازه ورودی رسیده است برای دریافت سهم بیشتری از حکمت نیبایستیم مجددانه تر از قبل تلاش کند که البته است تا مشخص شود آیا میل به ادامه مسیر دارد و آیا باور کرده است که هنوز هم چیزهای بیشتری برای یادگیری و رشد وجود دارد یا خیر؟ شاید هم با این گمان که دستاورد بیشتری برایش در ایک وجود ندارد از ادامه طریق انصراف دهد علت چنین وضعیتی آن است که ماهانتا استاد حقه در غیر حیات به عمد تبدیدی را در ذهن چلا قرار می دهد هرچقدر بیشتر به تزوید خود ادامه دهد، کمتر در راه کسب بینش حقیقی موفق می شود اگر چلا بر تردیدش قلبه نماید، این بازی باز هم همه روزه به روشی ظریفتر و دشوارتر ادامه می‌یابد و بیشتر و بیشتر چلا را مشغول می‌کند و نهایتاً به زمانی ختم می‌گردد که چلا نگرشی عمیق‌تر نسبت به اک حاصل می کند برای مهانتا اهمیتی ندارد که چلا در این راه موفق شود و یا شکست بخورد زیرا نمی خواهد چیزی را به چلا اثبات یا از چیزی دفاع کند کلیت ارتباط استاد حق در قید حیات با چلاها در این خلاصه می شود که با وجود آنکه که چلا را به سوی ارتفاعات والای معنوی هدایت می اصلاً اصلا هم اهمیتی نمی‌دهد که او در این مسیر زنده می‌ماند و یا می, می میرد. حق همین است چرا که استاد هوا و هوسی برای بزرگ بودن و مشهور شدن ندارد در پیان نیست که پس از رهلتش نامی از خود باقی بگذارد و به هیچ وجه برایش اهمیتی ندارد که مورد تشویق قرار گیرد یا طرف دشمنی و نفرت او واقعیت اکرا از برای تمامی اعمال، از کار و احساسات تمیز میدهد و میداند که همه اینها توهماتی بیش نیستند برای اینکه نیروهای کل زندگی فیزیکی را در کنترل خود دارند اشراف دارد و برابر این با این نیروها درگیر جنگ نمی شود بلکه در عوض می که تمامی چلاها را به زیر چتر حمایت خود آورد تا حتی المقدور از کل و تأثیراتش مسون بمانند زمانی که فرد روند ذهنی خود را مسدود می دچار تردید و دودلی می گردد این امر ناشی از ناتوانی نفس در حرکت مستقیم رو جلو می باشد بنابراین نشانه آن نیست که وی به مشکلاتش نمی اندیشد یا فکر کردن را متوقف ساخته است برعکس او نگران است با احساس پوچی به حیاتش ادامه می دهد و آرزوی پیروزی و ترس از شکست کاملا از سکنات او پیداست آن کس که خود را در این وضعیت استقرار میدهد دوچار نوعی تضاد و دوگانگی میشوند مگر آنکه آن را به ماهانتا استاد حق در قید حیات ارجاع دهد تا خود به خود از هم باز شود تضاد مذکور از این قرار است که آگاهی خالص به طور همزمان هم مثبت هم است و هم منفی چیزی هست ولی چیزی نیست پر است، اما خالی است. بنابراین وضعیت آگاهی برتر کاملا زد و نقیز است در وجه مثبت خود همان آگاهی حقیقی و سعود بخش است که وقتی چلا وارد به آن می شود به آرامش رسیده و همه چیز را می فهمد. از طرف دیگر به لحاظ اقلانی، وقتی شخصی تمامی محتویات و عناصر ذهن را خالی کند دیگر چیزی باقی نمی ماند. اینجا وجه منفی این تناقض است آنچه باقی می ماند خالیای مطلق یا هیچ بوده و جنبه محیب و ترسناک آگاهی است و همراه خود را در حالی که مملوب از ترس و حیرت است تنها می به طوری که شخص گمراه می شود از این جنبه به عنوان صورت ترسناک کل یاد می شود در آگاهی عمومی مثبت یعنی نور و صوت و منفی یعنی تاریکی. این ظلمات خداست که خیلیها آن را در طریق خدا تجربه میکنند. بدین سبب بدان ظلمات میگویند که تمامی مبانی و ازراکات در آن محو می شوند. درست همانطوری که تمامی سوژه ها در تاریکی فیزیکی ناپدید می گردند. این نور همان تاریکی و تاریکی همان نور و صوت است اکثر کسانی که هر دو وضعیت را تجربه کرده اند به همین نتیجه رسیدند آنها نمی توانند تمایز چندانی بین مثبت و منفی قائل شوند، چرا که از کیفیتی همسان برخوردارند و هر دو وضعیتی از جریان اک می باشند عموم انسان ها قائل به این هستند که تجربه معنوی یک رویداد مذهبی است و این باورند که معنویت الزامن با مذهب پیوند دارد. ایشان معتقدند که عرفان مذهبی و عرفان معنوی هر دو یک چیز است. آری، ارتباط تنگاتنگی بین این دو وجود دارد اما آنگونه که همگان می‌پندارند خیلی هم مستقیم نیست. نمیتوان این فرضی را به راحتی پذیرفت. گفته می‌شود که تجربه معنوی آری از هر گونه تعبیر ذهنی است. به طوری که در کلام و بیانش اصالت آن را به خدا مطلق و یا جهان روح منتسب می‌کنند. اما در اینجا یک چیز از قلم افتاده است و آن وحدت غیر قابل تشخیص با خدا می باشد اما زمانی که چلا به این وضعیت می رسد چیزی از قلم نمی افتد هرچند برخی این تجربه را وحدت با خدا تعبیر می کنند. ولی این فقط یک استنباط است و اصلا خود تجربه نیست این تعبیر کسانی نیست که ذهنی تحلیلگر دارند اما اکثرا از چون این ذهنی برخوردار نیستند بنابراین آنچه که هست کل است که مورد تجربه او واقع شده است همین و بس. با وجود آن که تجربه کاملا شخصی می باشد، اما در عمل وارد هیته غیر شخصی یا اشتراکات انسانی می شود به هنگام مراقبه و حادث شدن چون این تجربه ای شخص غالبا آن را تجربه ای به حساب می آورد که بر اساس نوعی تصویر مذهبی اتفاق افتاده است اما در واقع اینها فقط تأیید گرفتن و چار اندیشی ذهن است نه آنچه که واقعا در لحظه تجربه رخ داده است کسی که این واقعیت درونگرایانه را تجربه کند راههای مختلفی برای شرح تجربه اش دارد شاید احساس کند در وضعیات ماورا زمان و مکان حرکت می کند و می تواند آنچه روی می دهد را دیده و ادراک نماید تفصیل دیگر آن است که به عنوان کم کم فنا شدن در عبور از چیزی از این از فردیتش ارائه می گردد یا تصور می کند که فقدان فردیت یا بیخیشی را تجربه کرده است اما این مرحله اول سفر است این فقط حرکت در لایه های جهان ذهنی است همان جایی که بیشتر عارفین آگاهی کیهانی را تجربه کرده و آن را حقیقت مطلق شمردند او هنوز نیاموخته است که فراسوی جهانهای زمان و مکان حرکت نماید زیرا همچنان در بعد ذهنی که در محدوده طبقات معنوی مادی قرار دارد بسر میبرد این تجربه است که معمولاً به غرور و خودپسندی منتهی میگردد. مادامی که انسان تجاربی عرفانی و مذهبی داشته باشد معمولاً تمایل ندارد که به هم‌نوعانش خدمت کند بسیاری از تارکین دنیا و مذهبیون از طریق مدیتیشن و مواد مخدر به این مذهب می‌رسند و بیشتر ترجیح می‌دهند که به جای فعال بودن و جاری نمودن عشق خود به تمامی کیهان در همین نظر بمانند سفر روح این, این نیست تجربیات فرد در سفر روح به او انگیزه خدمت کردن بخشیده و هدف او را تا به حد ورود به قلب خدا و همکار شدن با خداوند متعالی می سازد او آرمانی حقیقی در ذهن خیش دارد و هیچ چیز دیگری برایش مهم نیست در حالی که آنان که سعید در تجربه آگاهی کیهانی دارند خوش دارند که از زندگی جمعی دست شده و آن را با کبر و غرور زندگی کنند زیرا در این وهم به سر میبرند که به ایشان حالی رویایی و آرامشی آمیخته با شعف ازانی می نماید حالتی که از آنها چیزی بجز انفعال فقدان عشق و نبود خدمت نمی طلبد اما این پندارها نهایتا به مرگ زوال و ناخوشنودی می انجامد این یکی از شگردهای نیروی کل می باشد به عبارت دیگر عرفان گریز از زندگی وظائف و مسئولیت هاست عرفان با نشعه آگاهی کیهانی کنج عزلت می‌گزیند و به امور دنیوی پشت می‌کند و نه تنها غم و اندوه خود را به فراموشی می‌سپارد بلکه نیازها و اندوه دیگران را نیز نادیده می‌گیرد اگر چلایی در وضعیت سفر روح مشاهده کند که شخصی در یکی از جهانهای پایین به کمک او نیازمنده است و روست که سفر خود را رها نموده و به مسائلت آن شخص بشه ورود برود به جهانهای بهشتی از طریق سفر روح با خود عشقی شدید و سوزان از برای سوزماز را برمقان می آورد که طبعا در جهت منافع تمامی هم و مخلوقات به سوی جهان سرریز می کند و در اعمال خیرخواهانه بخشش و ایسا البته نه فقط در کلام بلکه در عمل متجلی می گردد استاد حق در غیر حیات پیامبر است، نه یک پیشگوی وقایع آینده تفاوتی شگرف بین این دو وجود دارد پیشگوها صرفاً قراعت کننده پروندههایی از طبقات پایین و عموماً زیر طبقات اسیری می باشند. لیکن ماهانتا استاد حق در غیر حیات از جانب سوگماد سخن میگوید. او مجرای صدای سوگماد است و در اینجا چیزی از ذهن بر نمیخیزد، بلکه مستقیمن از قلب آن قادر مطلق توران می کند. او است که آیی از منیت و شخصیت میباشد. هیچ چیزی از جانب او شخصی نمیباشد. او چیزی را میدهد دهد که باید بدهد نه از خودش بلکه از منشع الهی و نه از طبع مذهبی بلکه از قلب حقیقت. او این قابلیت را دارد که هم در قالب زندگی و انجام کارهای روزمره پیام مور باشد و هم در وضعیت خلسه عمیق این کار را انجام دهد. این جنبه از اکم کار را به عنوان اکویدیا میشناسیم و قالبا ماهانتا استاد حق در قید حیات تنها کسیست که میتواند این نوع از پیشگویی ها را انجام دهد از طرفی فرق است بینه از پیشدانستن و پیشگویی کردن از پیشدانستن از مرکز معنوی آنامیلوک می آید از معمن سودماد ولی پیشگویی عمدتا از طبیعت روانی برخوردار است چلای اک معالا تفاوت بین این دو مغوله را در میابد از هر آنچه که ماهیتی روانی دارد و به زرر او و مخالف با گشایش معنویش به سوی قلمرو بهشتی باشد دست میکشد. دانش پیامبری دارای ماهیتی قویا استثنایی می باشد بندکی میتوانند به قابلیت غراعت پرونده های اکویدیا دست یابند همباره ماهانتا استاد حق در قید حیات پیامبر پیروان اکنکار است این جان کلام است چرا که به ما میفهماند فهماند که هیچ کس نمی تواند بدون آمادگی های مقتضی و بی ازن سوگماد خود را در مرتبت پیامبری قرار دهد آن کس که بدون بحث های بالا در اکنکار قصد عمل در جایگاه یک پیامبر را داشته باشد دوچار توهم و خودبریبی است او به واسطه این وهم تعابیر ذهنی زیادی را که برایش حکم حقیقت را دارند از خود صادر می کند پیشگویی های او به میزانی اندک و آن هم در محدوده طبقات روانی از صحت و درستی برخوردار است اما بیشتر پیشبینی هایش به حقیقت نمی پیوندد و حتی بعد از سپری شدن زمان مقتضی نیز رنگ صحت نمی گیرد. هایی که با استفاده از شرایط و عناصر محیطی انجام می‌شود متضمن حقیقت نیست زیرا این شرایط تابع نیروی مادی کُل پروردگار جهان‌های منفی می باشد این جهان‌های آفریده شده ذهن همان مناطق روانی هستند و بنابراین اعتباری ندارند همچنین همواره تغییر می‌کنند و سراکارشان با اشخاص و شرایط مختلفی می باشد و با تغییر میارهای شخصی و محیطی در این مناطق زمان و مکان همه چیز تغییر خواهد کرد پیشگویی برای یک فرد در سطح روانی شاید تحت یک سری شرایط و در یک زمان درست باشد ولی در یک زمان دیگر با تغییر شرایط مزبور غلط خواهد بود این تعین دقیق زمان مهمترین معذل پیشگو می باشد. او قادر به پیشگویی دقیق زمانی نیست چون نمیتواند زمانش را در جهان زمانی ببیند. از نقط نظر زمانی یک واقعه یا همکنون و یا شاید در آینده ای دور رخ دهد. اگر او زمانی قطعی برای وقوعش تعیین نماید تماما از ذهنیت خیش تراوش می گردد. و به هیچ وجه قابل اعتماد نمی باشد. پس بهتر آن است که از پیشگویی های روانی اجتناب نمود زیرا هیچ یک قادر به دیدن آینده نیستند آنها فقط در مورد آینده حس میزنند. فقط پیامبر راستین صدای سوگمال را میشناسند و آن را میشنود و تنها اوست که قادر به عرضه حقیقت است این پیامبر ماهانتا استاد حق در قید حیات است. او روح ایمان و شهامت را در تمامی انسانها بیدار می و تفاوتی نمی کند که در کالبد گوشت و خون با آنها روبرو شود و یا در آتماسا روبر. کلام او از جوهره خالص اک نشبت میگیرد این خلوص و وحدت ابدی است. تمامیتی محیط بر عالم و آثاره حقیقت است. جوهره یک بسی غنیتر از مغوله مرگ و زندگی دوباره است. آن موجود نیست بلکه جاودانه است. مفاهیم پیش آگاه توسط افکار و تصورات غلط مفهوم یافته و عرضده شدهاند. اگر آن میتست رها از افکار و بر چرت های ذهن باشد دیگر تصورات و اوهام نمیتوانستند برایش حالت شکل کالبر و محدودیت به وجود آورند روح دو جنبه دارد استعاره دو در به روح بدین معناست که روح قادر است در عالم فضا زمان یا پیندا که همان جهان شدن است وارد گردد و هم اینکه قابلیت سیر درونی در جهان های سطح دشا یا عوالم معنویت خالص خدایی یا همان جهان بودن را دارا می باشد با ورود به آگاهی حقیقی روح چلا خود را از تمامی گونه ها و همه پدیده های فیزیکی و روانی خالی می کند. اینجا نقطه اوج آگاهی روح است. و از آن پس او دیگر به وضوح اراده و مشریت سودماز را می و درک می و مشیت آن را در این عالم کسرت جاری می این دو بچه آشکار و پنهان با هم در روح حضور دارند که با تولد یک به بدان حلول کرده و با مرگش از آن جدا می گردد از آنجایی که چشم و حواست انسان قادر به دیدن و دانستن جنبه‌های متفاوت روح نیست. پیوسته سوالاتی در ارتباط با وجود روح در نزد چلا به وجود می‌آید. این بدان علت است که او تجربه ای خارج از آگاهی انسانی نداشته است. اساره اکنکار عبارت از اکتساب دیدگاه جدیدی در زندگی و هاست اگر شخصی خواستار ورود به زندگی درونی اک باشد، می‌بایستی از تمامی عادات ذهنی معمولش که زندگی او را در کنترل دارند، چشم پوشی نماید. بروست است که تحقیق کند که آیا طریق دیگری ای نیز برای ارزیابی پدیده‌ها وجود دارد یا خیر، و حتی پا فراتر نهاده و بتفحص نماید که. آیا روش معمول زندگیش برای رضایت ابدی و نیازهای معنویش کفایت می کند؟ اگر به هر دلیل از زندگی خود راضی نباشد و یا چیزی در زندگیش وجود داشته باشد که او را از آزادی عمل در ارتباط با مقدسات درونیش محروم می سازد، بر او واجب است که جهد نموده و راهی به جایی بیابد که به او احساسی با اطمینان و رضایت ببخشد ایک این را برای تمامی کسانی که چونین دقدقه ای دارند ممکن می سازد و برای فرد حصول به دیدگاه تازه ای را که در آن زندگی جنبه ای تازه تر، و رضایت بخشتر را برایش تدارک می تضمین می‌کند. این حق مسلم همه است اما جرستر و از از تحولات بزرگ ذهنی است که انسان به دنبال آن است این مسئولیت سنگی است. قسل در آتش است. و شخص را در مواجهه با طوفان، زلزله، ریزش کوهها و خورد شدن ها قرار می‌دهد. حصول دیدگاهی نوین در رابطه با زندگی و دنیای چلا اکشار نامیده می‌شود. اکشار مشابه روشنزمیری در نزد مذاهب است با این تفاوت که در بردارنده نور و صوت است. بدون آن اک به مسابه خوشیدی فاقد نور و حرارت است. اکشار یک روند منطقی و تسلسل ذهنی نیست زیرا تمامی تعابیر اقلانی را باطل می کند آنکه که آن را تجربه کند زبانش از توصیف منطقی و استدلالی آن قاصر است. معهضا مادامی که در قالب کلمات و یا ایما و اشارات وصف گردد محتویاتش قطعا متحمل چند پهلوی و کسرت می گردد. غیروااصلین باور نمی کنند که آنچه از نظر بیرونی نامحسوس و نامرئی است قابل حصول باشد. ولی آنان که آن را تجربه کرده و درک کرده باشند میفهمند چه چیز ناب و چه چیز حق نیست. نشان اختصاصی تجربه اکشار آن است که همواره توسط چیزی که غیر منطقی، غیر قابل توصیف و غیر قابل ابلاغ است مشخص می شود زبازار می گوید آن همچون آتشی است که کالبد را به حدی می سوزاند که فرد را یارای سخن گفتن درباره دردش نیست او فقط آن را تجربه می کند و از آن پس همه چیز در بستر زندگی متحول شده است. بایستی دانست که اکشار خرد الهی را در خود دارد که سر و کارش با زندگی کیهانی و مقارن آن با بقاء تجربهگر در ابدیت است. ولی این دانش پایان راه نیست زیرا دوباره و دوباره و آنگاه که چلا در گیرودار اکشار است از راه می رسد و هر بار با شدت و هدت بیشتری میآید، آن هم با این عظیمتر برای دانش و حکمت سودماد بهترین تعبیر اکشار آن است که بگوییم شکلی از ادراک می باشد ادراکی درونی که در عمیقترین ترین های آگاهی ریشه دارد مادامی که شخص آن را تجربه کند احساس اقتدار و توانایی به همراه آن وارد می شود به طوری که دیگران او را درک نکرده و از او رنجیده و خشمگین می شود. این احساس قدرت نقطه اوج این تجربه است زیرا تمامی معقولات منفی زندگی و تفکراتی که از نیروهای کل و از منطقه ذهنی نشعت می را در هم شکسته آن را با چیزهای مثبت پر میکند. هرچند که شخص اکشار را در آن از کیهان معنوی که فراسوی زمان و مکان است تجربه می کند اما احساس می کند که آن ریشه در جای دیگری دارد او حس می کند که ریشه اکشار در چیزی باقی و جاوید است که اقتداری تا درجه به آن می بخشت. این بقا و جاودانگی همان سودماد است جایی که تمامی ریشه ها و سرچشمه ها بدان متصل و نیازمندند این تجربه ای غیر شخصی است اما شخص را به این دانستگی میرساند رساند که همه ریشه ها در قلب خداوند می باشند با وجود غیر شخصی بودن تجربه هر تجربه ای برای تجربه گر شخصی می باشد اکشار احساسی را با خود میآورد آورد که متزمن در هم شکستن محدودیت است که به حضور فرد در این جهان مادی به وی تحمیل شده است از بین رفتن این محدودیت ها مترادف با توسعه آگاهی فرد می باشد تا چلا این را بداند یا از آن خبر باشد محدودیت و نیاز مؤلفه‌هایی هستند که آگاهی انسانی را تحت تسلط خود دارند زیرا آگاهی سی نفسه برایند این دونی رو می باشد که یکدیگر را محدود و مشروط می بر برعکس این اکشار شامل موقوف نمودن تضاد و دوگانگی است و به فراسوی آن نظر دارد به جهانهای بهشتی جایی که فقط آزادی و شعف و حض بودن وجود دارد برای رهایی از این محدودیت چلا بایستی سفیر روح گردد و به جایی برسد که همه چیز در حد اعلای خود وجود دارد کسی که اکشار را تجربه می کند به خاطر افضایش ذریب هوشیاری معنوی آلونک در نظرش مبدل به قشری با شکوه می شود هالآنکه تا قبل از آن قصر در نظر حواس ظاهریش همچون کلبهی محقر و بیروه جلوهگمی بود اکشار از ثروق مختلفی بر چلا ظاهر می‌شود ممکن است به صورت ناگهانی از راه برسد و در قالب تجربه‌ای روز گذر بر او وارد گردد شکل دیگرش آن است که به تدریج ظهور می‌کند و تجربگان ساعتها در آن حال و هوا باقی میماند و چه بسا روزها به طول بیانجامد در همان شور حال درونیش قادر است بدون جلب توجه دیگران به انجام وظائف روزمرهش بپردازد. شاید هم در طول روز زمان مشخصی را برای ورود به چنین تجربه ای برای خود در نظر بگیرد البته این مستلزم آن است که با تمرین به این قابلیت دست یافته باشد و بتواند به هر مدت زمان دلخواه در آن به سر برده و به اختیار خودش دوباره به این جهان مادی بازگردد. بنابر این مطالعه ذهن و جنبه‌های مختلف آن به کمال نمی‌انجامد. چلا نهایتا یاد می‌گیرد که چراغ عقل هدایتگری بیدوام به سوی خداست. اگر او خواستار دانش حقیقی و حکمت الهی باشد لازم است که به واسطه ماهانتا استاد حق در قید حیات در طلب اکشار باشد هرچقدر بیشتر طریق را در جستجوی اکشار ادامه دهد به همان نسبت از نقطه نظر اجتماعی نیز بیشتر بازنده می شود. زیرا جامعه غالبا اکیستارا را پذیرد او یک بازنده است چرا که او در طریق اک خود را از زندگی قراردادی کنار می‌کشد او دیگر مالک فردوس و قدرتی است که به هیچ روی با زندگی بر اخلاقی اخلاقیات قابل وصول نیست ولی این باعث قرور او نمی شود زیرا درک این نکته که جریان یک از او به عنوان مجرایی زلال استفاده کرده است به او احساس فروتنی می‌دهد او در این وضعیت می‌داند که انتخاب نکرده بلکه انتخاب شده است و از سر خیشن و تلاش فردی مکنت قدرت و جاه و جلال آن را دریافت نموده است او دیگر نمیتواند تواند به جز خدمت به آن کار دیگری در این دنیا انجام دهد اگر او فقط به خاطر عزت شعف و شادمانی از مواهب زندگی مادی بخواهد مجرای اک باشد دوچار خطای فاحشی شده است. سوگمات نور بهشتی را بر سر تمامی برگزیدگان فرو میریزد، لیکن اینها همه بعد از آن است که فرد به خویش انضباطی طریق اک خو گرفته باشد. آگاهی مرکب حسی اقلانی که از جمله بالاترین امتیازات نیروی کلمی باشد، با ورود اکشار به آگاهی کمرنگ می شود اما از بین نمی رود و فقط به هنگام نیاز توسط چلا در جهان مادی مورد بهرهوری قرار می گیرد. استفاده از آگاهی مرکب حسی اقلانی برای گشودن گره مشکلات و مسائل راه به جایی نمی برد. توجه به هر دو وجه یک مسئله دوریست باطل هیچ پاسخی او را ارضا نمی کند و او به تسلسل بیهوده خیش ادامه می‌دهد. درست همانند تشنه ای که آب را در صحرایی خشک و بی آب و علف می جوید مثل او به کسی میماند که تقلا می کند تا چیزی را به خاطر آورد گویی چیز مهمی را که اساس حیاتش بدان وابسته است را فراموش کرده است این و ایت تنش معنوی است که تنها با ملاقات با مهانتا استاد حق در قید حیات می آن را مرتفع نمود شاید به صورت کلامی و ارتباط بیرونی میسر شود اما معمولا منوس به ارتباطی درونی است که بین چلا و استاد حق در قید حیات برقرار می گردد او بعد از ملاقات با مهانتا هم از درون و هم در کالبد بیرونی دوچار هراس بیقراری و احساس تحریک از یک واقعه یا تهدید بیرونی می شود سپس پاسخها در برقی از ثانیه به او وارد شده و او قادر خواهد بود که همه چیز را گونه که هست ببیند لحظه ادراک همواره کوتاه و مختصر است اما از دیدگاه او شاید یک ساعت، یک سال یا بیشتر طول بکشد. اما پیام بسیار ژرف، تاثیرگذار و زیبا می باشد با وجود آنکه او موصوف به قابلیت دیدن، فهمیدن و دانستن است، اما درک کامل آن مستلزم حرکت در مسیر زمان است. این است اک حقیقت جاودانه